بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوند بخشنده مهربان قل رحمی الی انی استمع نفر من الجن یقول ان سمعنا قرانا عجبا دیگر بمنبه شده است که جمع از جن با سخنانم گوش فرا دادند پس کبتن مسلمان ما قرآنی عجیب شنیده ایم. یا ای که به ولن نشرك بربنا احدا راست هدایت پس ما به آن ایمان آورده ایم و هرگز اهدی را شریف فرمان کارمان قرار نمی دیم. وَأَنَّهُ تَعَالَ جَدُ رَبِّنَا مَتْتَخَذَ صَاحِبَتًا وَلَا وَلَدًا وَا این که بلنده مقام با عظمت فر بارتگاه ما با او هرکیز براوی انتخاب نکرده وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَقَ با این که و اینکه سفیهان ما خدا خداوند سخنان ناروا می گفتند ونا وننا ن لن تقول النس والن علی الله ذبا و اینکه ما گمان می کردیم که انس و جن هرگز دروغ بر خدا نمی بندند و ان نهکلری جون میل اننسنی عضو نبیریگررم مینلیینی به زدو و مفق اینکه مردانی از بشر و مردانی از جن فناه می بردن و آنها سبب به افزایش گمررای و تغیانشان میشدند وَأَنَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَنُوا أَلَّيَبَعَثَ اللَّهُ أَحَدَّ وَأَنَّ لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْفًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنْ كَانَهُ جُمَانَ كَرَدَّنَّ گونه كه شما گمان خداوند هرگز کس کسی را مبوس نمی‌کند و اینکه ما آسمان را جستجو کردیم و همه را پر از محافظان قوی و سیخای شهاب یافتیم و اننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا و ما پیش این به اصراق سمع در آسمان ها می نشتین. اما اکنون هر کس بخواهد اصراق سمع کند چه را در کمین خود می آباد. و انا لا ندری اشغه ارید بهم في الارض ام اراد بهم ربهم رشد. و اینکه ما نمیدانیم دانیم آجا اراضه شریع درباره اهل زمین شده یا فرباردگارشان اراضه کرده آنها را هداو جد کند و ان من نصالحون و من و انا و الله في الأرض ولن والا نوزه و اینکه در میان ما افراد صالح و افراد غیر ساده و ما گروههای متفاوتی هستیم و اینکه ما یقین داریم هرگز نمی توانیم بر اراده خداوند دست زمینین خاک شویم و نمی توانیم از پنجه قدرت او فرار کنیم. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْتًا وَلَا رَحَقًا وَا اِنْ كَمَا هَنْغَامِكَ هَدَوْجَتُ فَرَانْ رَوْشَنِيدِي مِنْ بَا اَنْ ایمان با با با و هرکس با پروردگارش ایمان نه از نقصان میترسند و نه و آن من المسلمون و من فمن اسلم فَأُولَئِكَ تَحْظَوُ غَشَدَ و اینکه گروهی از ما مسلمان و گروهی از هر کس اسلام را اختیار کند راه راه را برگزیده. دیده و اما, و اما ظالمان آتشکیلی تو سخمد و ان لو استقاموا علا طریقت لأسطین ما انغرفا و اگر آنها بر طریق ایمان استقامت برسند ما آنها را با آب ترابان سیراب میکنیم کنیم لینفتین هم کیه و عن ذکر غضبه یسلط عذابا صعدا تا ما آنها را با این نعمت و حرکت از ذکر فروت گارش روی گردان شود او را به عذاب شدید عبزون می ساتد و روز ابزون گرفتار الله احد. و اینکه مسلما مساجد از آن خداست در این مساجد هدی را با خدا نخوانید و لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا بِأَنَّكَ که خدا بر و او را ميخا گروه سخت از او اوجم ميشدن قل انما ادعو بگو من تنها پروردگارم را می و هیچ کس را شریک که او قرار نمی دخنم. بگو من مالک جیان و هدایتی برای شما نیستم قل انني لن ينجيني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا بگو اس مرا در برابر او پناه نميدهد و پناهگاهي جز او نميابند الا بلاغا من الله و و من یعصی الله و رسوله فإن لهنا رجهنم قالدین فیها أبدا تنها و من ابلاغ اصول خدا و رساندن رسالت اوز و هر کس نافرمانی خدا و رسولش کند آتش از آن او. جاق در آن میمانند حتی خ ایده ما یوعدون فسیعلمون من اضعف دو و قالونعدده تا زمانی که آنچه را به آنها عدد داده شده ببینند؟ آنگاه میدانند چه کسی یا برش <تصفيق> و جمعیتش کمتر است قل این اقریب ما توعدون ام یجعب له ربی امدا بگو من نمیدانم آنچه به شما وعده داده شده نسی است یا پروردگارم زمانی برای آن قرار می دهد عالم الغیب فلا یدهی و غیبه الغیب هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی‌ساست الا من يتخذ من رسول فانّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد مگر رسولان که آن را بر گویداست با مراقبین از پیش رو و پشت سر بر آن قرار می‌دهد لیعلمان قد ابلغو رسالات ربهم و احاق بما لدهیم و احخاق لشیح عددا تا بدانت پیانبرانش رسالت هاوی پروارکارشان را ابلاغ کردند و او با انچه نفس آنهاد دارد و هر چیزی را